فصل 27 برادرم درباره باری شیرینکاری های بسیاری که در جنگ جنگل از او سرزده بود داستان های بیشماری تعریف می کرد. داستان هایی که یکی از دیگری باور نکردنی تر بود و نمیدانم کدام یک را درست تر بدانم. از این رو رشته سخن را به خود او می سبارم و به بازگویی بیکم و کاست چند تایی از آن داستان ها می‌کنم. یگانهای شناسایی دو طرف درگیر در جنگ در گوش و کنار جنگل می گشتند. هر بار که صدای به هم خوردن شاخه ها و بوته ها را می شنیدم، گوش تیز تا ببینم کیست؟ اتریشی‌ها یا فرانسوی ها؟ یک سطفان کتا قد اتریشی که موهای بسیار بوری داشت، یک یگان گشتی را فرماندهی می‌کرد که سربازانش اونیفورم های بسیار زیبا و برازنده داشتند. موهای گره بسته و کلاه گوش و پا تاوه و همایل سفید و توفنگ ها و سرنیزه هایشان از پاکی برق میزد. به دستور افسر به ستون دو پیش می رفتند و حتی در کور راه های پرشیب هم می کوشیدند نظم صفه خود را حفظ کنند. افسر شرایط جنگل را نمی شناخت و پای بند آن بود که دستور های دریافتی را مو به مو اجرا کند. از این رو بر اساس ای که در دست داشت پیش می را. و پیاپی به بمبست می رسید. چکمه های سربازانش روی سنگ ها سر میخورد خار درختان به سر روی سربازان فرو می رفت. ولی افسر با پشت گرمی به برتری افزارهای امپراتوری همچنان پیش می رفت. سربازان برومندی بودند. بالای کاجی پنهان شده بودم و انتظار لحظی را می کشیدم که از زیر پایم بگذرند. یک سیبک کیلویی در دست داشتم و آن را روی سر سربازی انداختم که در ته ستون میرفت سرباز دستهایش را بالا آورد زانوانش خم شد و به میان بوته های سرخس افتاد هیچ کس نفهمید و یگان به راه خود رفت دوباره خودم را به آنان رساندم و جوجه تیغی گلوول شده ای را روی سر یک سرجوخه انداختم سرجوخه سر خم کرد و از هوش رفت. سطفان این بار متوجه شد دو نفر را به جستجوی برانکار فرستاد و ستون را به راه انداخت. ستون به نقطه‌ای با درخچه های بسیار به هم فشرده پا می‌گذاشت و با از تل بر سر راهش بود. کلاهی را پر از کرم‌های کوچک آبی رنگ و پشمالو کرده بودم که با کوچک ترین تماس تنها آدم را پر از جوش می‌کردند. صدتایی از آنها را رو روی سر سربازان ریختم از لابلای درخچه ها گذشتند و ناگهان همه به خواراندن جوشهای سرخی پرداختند که سر و صورتشان را پر کرده بود. با این همه پیش می رفتند. چه سربازانی و چه افسری؟ جنگل آنچنان برای افسر ناشناخته بود که هیچ چیز را غیر عدی نمی یافت و ستون تار و مار شده خود را با همان سربلندی و رامش ناپذیری همیشگی پیش می رند. آنگاه بود که گروهی از گربه های وحشی را به کار گرفتم. دم تک تک آنها را می گرفتم و چند بار در هوا می چرخاندم و به سوی سربازان پرتاب میکردم این کارم گربه ها را به گونه وصف نپذیری خشمگین می کرد. سرا صدای بسیاری به ویژه از سوی گربه ها برپا شد سپس سکوت و آتش بز شد. پتریشی ها زخمی های خود را درمان کردند. سپس سوتون دوباره به راه افتاد. سر و روی سربازان از پارچه زخم بندی سفید شده بود به شتاب دنبالشان می رفتم و با خود می گفتم تنها راه چاره این است که همهشان را اسیر کنم امیدوار بودم به یگانی فرانسوی بربخورم و از نزدیکی دشمن خبر بدهم اما از چندی پیش فرانسوی ها در آن جبهه کاری نمی کردند. به زمینی خز پوش رسیدم و دیدم که چیزی آنجا می جنبد ایستادم و گوش خواباندم صدایی چون شرشار جویبار بار شنیده می كه که رفته رفته روشنتر شد و حالت پچ پچه پیگیری را به خود گرفت. از آن میان کلمه های بریده بریدهی را میشنیدم كه که به فرانسه بود. آخر لعنت به بلم کنید خفشو. <تصفيق> با دقت بیشتری به درون سایه روشن چشم دوختم. دیدم که آنچه در آغاز به نظرم زمین خز پوش رسیده بود، سراتن سربازانی بود که کلاهای گشاد پشمی به سر و ریش و سویل انبوه داشتند. گروهانی از نیروهای سواره فرانسوی بود. ریش و پشمشان در جریان های زمستانی نم برداشته بود و با فرارسیدن بهار آکنده از خزه شده بود و سبز و خرم جلوه می کرد. فرماندهی آن گروه پیشاهنگ با سطوان اگریپا پاپیون شاعری از مردمان روآن بود. که داف در ارتش جمهوری خواه خدمت می کرد. سطفان پاپیان آنچنان به طبیعت مهر می ورزید که اجازه نمیداد سربازانش سر و روی خود را از خس و خاشاک و برک ها و میوه ها و حل از اونهایی که هنگام گذر از جنگل به تنشان می چسبید پاک کنند. و گروه گشتی او آنچنان با طبیعت پیرامون در هم آمیخته بود که چشمان تیز بین من نیز به دشواری آنان را دید. افسر شاعر موهایی بلند و پرچین و شکن و چهرهی لاغر داشت. در میان سربازانش که به حالت راحت باش بودند، ایستاده بود و شعری را در ستایش از جنگل میخواند. ای جنگل، ای شب، گوش به فرمان شمایم، آیا پیچش ترکه نازکی از پرسیاوشان بر پای این دلیر جنگاوران سرنوشت فرانسه را دگرگون خواهد گرد؟ پیش رفتم و گفتم، میبخشید هموطن. کی بود؟ کجاست؟ منم هموطن، یک میهن پرست جنگلی. ها کجایی؟ درست بالای سرتان ها، دیدم، اما به چه هستی؟ انسانی پرنده آسا؟ یا شاید پرندهی اساطیری نه، اسمم رندو است. هم پدر و هم مادرم از آدمیان بودند. مادرم از رزمندگان جنگ جانشینی بود. فهمیدم. آه ای زمانه. ای شکوه پیروزی. گفتهت را باور می کنم هموتن و مشتاقم که خبری را که گویا برایمان من ای بشنوم ای یک واحد گشتی اتریشی دارد به طرف شما می آید. چه گفتید؟ پس زمان نبرد فرا رسیده است. ای جوی بار، ای جوی بار زلال روشن، دیری نخواهد پایید که رنگ خون بگیری، به پیش سلاح برگیرید به فرمان سوتوان شاعر سربازان جنگ افزار و باروبونه خود را جمع کردند اما آنچنان شل و وارفته بودند و آنچنان تنبلانه می جنبیدند که به آمادگی رزمیشان شک کردم زمان بسیار درازی را به خمیازه کشیدن و اخوطوف کردن و بد و بیراه گفتن و خستگی در کردن گذراندند از افسر پرسیدم هموطن برای نبرد نخشهی دارید؟ نقشه. بله به دشمن حمله می کنیم. درست اما چطور؟ چطور؟ در صفوف فشرده؟ قبول اما اگر من به جای شما بودم، سربازانم را پراکنده می کردم و بی حرکت نگه می داشتم و صبر می کردم تا دشمن به پای خودش به بیفتد. بی پاپیون مرد رامی بود. طرح مرا بیچون و چرا پذیرفت. سربازان در جنگل پراکنده شدند و ظاهرشان چنان بود که در میان شاخ و برگها به چشم نمی آمدند. به ویژه بدیهی بود که سطفان اتریشی آنان را نخواهد دید یگان گشتی اتریشی راهی را که روی نقشه آمده بود دنبال می کرد گهگاه صدای خوشکی را می شنیدم که فرمان می داد راست راست، به چپ چپ به دینگونه ستون از کنار سربازان فرانسوی گذشت بیان که آنان را ببینند فرانسوی ها بی سر و صدا جابجا جا می شدند و پیش می رفتند. من از بالای درختان با صدای تیهو یا جغد به آنان خبر میدادم که دشمن از کدام سو رفته است و از چه راهی باید میان برزد. قطریشی ها گیر شدند و به دام افتادند. از بالای درختان صدایی به گوششان رسید که می گفت ایست! به نام آزادی، برادری و برابری شما را بازداشت می کنم. در همان زمان کسی از لابلای بوته ها بیرون آمد و لول یه دراز را به سوی آنان گرفت. بورا زنده باد ملت بوته های پیرامون اتریشیها جنبید و پیش آمد بوته نبود سربازان یگان سطفان پاپیان بودند اتریشی ها زیر لب غریدند ولی پیش از آنکه بتوانند دست به کاری بزنند فرانسوی ها را گرفتند افسر اتریشی با چهره رنگ باخته اما سر برافراشته شمشیر خود را تسلیم کرد به همکاری با ارتش جمهوری خواه پرداختم. کارهای بسیار پر ارزشی برایشان می ولی بیشتر دوست داشتم تنها به شکار بروم و فقط از جانوران جنگل کمک بگیرم. مانند آن روزی که لانه زنبوری را روی سر یک ستون اتریشی انداختم و همهشان را تار و مار کردم. آوازم در میان نیروهای اتریشی پیچیده و حتی حالتی افثانهی به خود گرفته بود. می گفتند جنگل پر از نیروهای ژاکوبن است که بالای درختان مازه گرفتند. ها هنگام گذر از جنگل سراپا گوش می‌شدند. با کوچکترین صدایی که از افتادن یک میوه بلوط بلند میشد یا جیرجیری که سنجابی میکرد، می‌پنداشتن که به محاصره ها درآمدهاند و راه خود را کج میکردند. در نتیجه، من میتوانستم تنها با تقلید صداهای گوناگون جنگل، نیروهای اطریشی را از راهی که میرفتند به بیراهه بکشم و به هر کجا که دلم میخواست بکشانم روزی از روزها یک یگان دشمن را به بوتزار پر پشت و پر از خاری کشاندم و کاری کردم که در آن میان گم شدند دسته بزرگی از گراز در همان دوروبر زندگی میکرد سر و صدای توبها گرازها را واداشته بود از ها پایین بیایند دسته دسته دست در جنگل و کناری دریا پراکنده بودند های گم شده در میان بوته ها سرگردان بودند و جلوتر از نوک بینی خود را نمی‌دیدند ناگهان با دسته گراز پشمادو رو در رو شدند که قررششان مو به تن راست می‌کرد گرازها حمله ور شدند بوزه‌های خود را میان پاهای سربازان فرو می‌بردند و به هوا پرتابشان می‌کردند و سپس لگد کوبشان می‌کردند و به شکم‌هایشان شاخ میزدند. گروهان تار و مار شد. من و یارانم از بالای درختها شلیک می کردیم. سربازانی که جان به در بردند و خود را به اردوگاه رساندند نمیدانستند چه به سرشان آمده است. دسته ای از زمین لرزهی سخن می که ناگهان زمین پر از خار زیر پایشان را لرزانده بود و دسته دیگر از نبرد با جاکوبنهایی دم میزدند که یک بار از دل زمین سر برآورده بودند. زیرا فرق چندانی میان جاکوبنها و نمیگذاشتند. آنان را موجوداتی نیمه انسانی و نیمه جانور میدانستند که بالای درختان یا لابلای بوته زندگی می کردند. گفتم که بیشتر دوست داشتم تنها به عملیات بروم و یا اینکه همراه یارانی باشم که پس از ماجرای انگورچینی با من به جنگل گریخته بودند می‌کوشیدم هرچه کمتر با ارتش فرانسه سر و کار داشته باشم می دانید که ارتش چگونه است با هر حرکتی که می کند خرابی به بار می‌آورد. با این همه به یگان سطفان پاپیون دلوستگی داشتم و خیالم درباره آن چندان آسوده نبود. نگران بودم که مبادا بی در آن جبهه برای یگان سطفان شاعر گران تمام شود. روی اونیفورم سربازان او رفته رفته خزه و جلبک و حتی سبزه می رویید. روی کلاه‌هایشان گنجش کالانه می و موگه گل می کرد. چکمه به زمین می چسبید و کنده نمی شود. چیزی نمانده بود که در زمین ریشه بدوانند. طبیعت پرستی اساتوان اگریپا پاپیان سربازانش را خورده خورده به شکل جانورانی نیمه حیوانی و نیمه گیاهی درمی‌آورد. باید آنان را به جنب و جوش وامی داشتم اما چگونه فکری به نظرم رسید و رفتم تا آن را با اساتوان در میان بگذارم. باز در حال خواندن شعری در ستایش از ماه بود. ای ماه گردی دیرو خسارت دهانه ی توپ را به یاد می‌آورد و گلوله ای را که پس از پرتاب آهسته آهسته در آسمان می خرامد. بگو که زمان انفجارت کی فرا خواهد رسید ای گلوله ای آسمانی تا ابری از اخگر به باری و همه تخت و تاج تاجها و ارتشهای دشمن را تباه کنی تا بر این دیوار بلند فراموشی که هموطنانم به روی من کشیده اند شکافی به و مرا به سوی افتخار رهنمون شوید. آه شهر من روان، آه ای ما، ای سرنوشت، ای مجلس مردمی، ای وزقها، ای دختران، ای زندگی گفتم هموطن؟ پاپیان دلگیر از اینکه به میان سخنانش دویده بودم با لحن خشکی پرسید؟ چه شده؟ میخواستم بگویم که راهی به نظرم رسیده تا سربازانتان را از این حالت رخبت خطرناک؟ بیرون بکشم از خدا میخواهم خواهم هموطن. همانطور که میبینید بینید اتش جنب و جوش لحظه آرامم نمیگذارد. بگویید ببینم چه پیشنهادی دارید شپش هموطن متاسفم هموطن در ارتش جمهوری خواه از شپش خبری نیست بر اثر محاصره و گرانی هزینه زندگی همه از گرسنگی مرده میتوانم می توانم هر چقدر بخواهید برایتان بیاورم نمیدانم شوخی می کنید یا جدی می گویی. در هر حال این را به اطلاع ستاد فرماندهی میرسرم. خودشان تصمیم میگیرند. از شما هم به خاطر خدمتی که به آرمان جمهوری می کنید سپاس گذارم. ای افتخار ای روان ای شپشها ای ما این را گفت و هزیان دور شد فهمیدم که باید خودم دست به کار شوم. شپش بسیاری فراهم کردم به کمک لوله باری و بلندی آنها را به سوی سربازان پرتاب میکردم و کوشیدم زیر یقه هایشان را نشانه بگیرم. سپس شپش ها را مشت مشت روی آنان ریختم. عملیات خطرناکی بود زیرا اگر به آن پی می بردند دستگیرم میکردند و سابقه مبارزاتی هم نیز نمی توانست کاری از پیش ببرد. مرا می میکردند یا به فرانسه می بردند و به عنوان عامل ضد انقلاب به گیوتین میسبرردند. با این همه آن عملیات کارساز بود. خارشی که به تن سربازان افتاد، این نیاز انسانی و متمدنوار را در آنان پدید آورد که خود را بخارانند و در جستجوی شپش اندامهای خود را وارسی کنند. لباسهای کهنه، پوشیده از خز و کیسه ها و توبره پر از قارچ و تارن کبوت خود را به دور ریختند، خود را شستند. ریش را تراشیدند و موهای خود را شانه کردند. و خلاصه هویت انسانی خود را باز یافتند دوباره به تمدن رو آوردند و از وحشیگری دوری گرفتند در همان حال شور تازه‌ای برای جنب و جوش و پیکار به جانشان افتاد و روحیه رزمی را که از مدتها پیش فراموش کرده بودند باز یافتند زمان حمله فرا رسید و آنان در اوج آمادگی بودند ارتش های جمهوری پایداری دشمن را در هم شکستند پیش رفتند و به پیروزی های بزرگی رسیدند